تسفانه ما یک مشکلی داریم مشکل تأثیر پذیری از مستشدی مستشدیم به احادیث ما با نگاه منفی نگاه میکنن با نگاه سوء زن آمیز از اول اصل رو بر عدم اصالت احادیث بدوشتن نه خصوص احادیث شیعه ها احادیث اسلامی اصلا علت اصلی قضیه هم تحت تأثیر حرفهایی که در مباحث انجیل شناسی هست در مباحث انجیل شناسی که خیلی تأثیر گذاشته در اصلا روند رابطه بین کلیسا و علم در کشورهای قربی خب اینا رو قرائن و شواهدی بسیاری از مطالبی که در اناجیل مطرح هست میخوام میگن این مطالب جعلی هست و مطالب درست نیست چی هست و این نگاه منفی که در های اناجیل بوده این نگاه باعث شده که مشابهش رو پیاده سازی کنن در که دیگه در تمدون های دیگه و فرهنگ های دیگه و از اول با یه نگاه منفی به احادیث نگاه میکنن اصل اولی رو با مجعول بودن و امثال اینها قرار میدن اگر این نگاه ها متاسفانه متاسفانه این در بعضی از چیزهای ما هم این نگاه حاکم شده به خصوص در محیط های دانشگاهی که خیلی شایع هست و احیانا در محیط های هم آدم مشاهده میکنه و خیلی بده که این جور چیزها حالا من این حالا یک رشته سر دراز دارد نمخوام وارده ریزه کاری های بحث بشم و همثال اینها اصل غذیه با این نگاه سوء زننامیز به میراث نگاه کردن هست این نگاه باعث میشه که قضایی یک شکل دیگه پیدا کنه حالا وقت کدشه فرای یه نکته را عرض بکنم حالا به تناسوب این آقای تیوان سمیه کتاب داشت بنام اراغ پراکنده تو اراغ پراکنده هر سید از ابن تیمیه نقمه میکنه در مورد اینکه که اصلا خادمی به نام فزه نبوده و نمیدونم اصحاب علمای ما کسی به نام فزه نمیشناسنه چیز یک قضایی رو مطرح میکنه بسر این هست که حالا در این فزه روایت های زیادی داریم در مورد فرزه و امثال اینها و همون روایات برای اثبات وجود شخصی به نام کافی هست و به هر حال نیازی نیست ولی ابن تیمی هم یکی از شخصیت هاییست که نگاهش نسبت به یه سری از تیزهایی که با تفکرات و افکارش ناسازگاره از اول با نگاه منفی داری نگاه میکنه و اونجا حاج یادم هست که یه تعبیری داشتن در هاشه همون قرار پراکنده آقایی کیوان که تعصب از هر نوعش مضمومه چه تعصب متعارف به چه تعصب روشنفکری ما متاسفانه یه چیزی هم هم تعصب روشنفکری کسایی که دلشون میخواد حرف جدید بدن حرف تازه بدن یکی از حرفای تازه بدن حرفایی حرفای که قربی خوششون میاد اونوری ها خوششون میاد این یه سب که من نمیخوام بگم هرچی توی میراث ما وجود داره درست است و امثال اینها ولی این که از اولا ما به عنوان یک اصل مفروض بگیم هرچی هم وجود داره خرابه و دنبال دلیل برای تخریب اینها بگردیم اونم باطله هر دو طرف قضایی افراد تفریطی هست که این افراد تفریط باعث میشه که خیلی مسائل رو چیز بکنه